بسم الله الرحمن الرحيم قائده 78 كتاب اولا طائفه من احكام الالم در هر ایک از این آورده بود نہ مصر في عهد الملك فؤاد بن فؤاد بن اسماعيل عبد القاهر الجرجاني اول مؤلف في البلاغة نيوكاسل من أكبر المدن الإنجليزية أول ما صنف في النحو كتاب سيبوي بنا المعتسم مدينة سر من إن أمثلة غروها كان عمر الأمر الجاحظ أبو إسман من كتاب الدولة الأباسية كانت آيشه أم المؤمنين رواية للحديث عامي لعبد الله المامون على ترجمة علوم اليونان این خیلی اتفاقا بحث بسیار آسانی هست خیلی اسم صادق ولی شما همه اینا رو خوندید باور کنید شما اینا رو حتی در نحومیر خوندی ولی چون اینا رو خوندید جناب الشيخ هم حفظش کرده گفته بود من فهمیدم اینا رو کامل یعنی اینا رو مفصل خوندید قبنا شما گفتم ببینم مغزاتون به کدوم سمت میره حالا بیایید این چقدر ساده هست القواعد گوش کن شیخ سوهل چقدر ساده است یکونو العلم و مفردن علم مفرد, مفرد می باشه معنند امسوله گروه اول معنند چه کلماتی فؤاد فعاد که در کلمه اول اومده است و اسمایل فؤاد و اسماعیل هر دوتا چه هستند امر، زید، باک، محمد مفرد ای این همشون مفردن و مرکبن و الم گاهی موقع چه مرکب حالا این مرکب ترکیب اضافیا یا مرکب ترکیب اضافی است مانند گروه امسلی اول شماره دو عبدالقاهر مانند چه؟ عبدالقاهر. عبدالقاهر و عبدالله عبدالسامت برحمه این اسم علم عبدالله ولی مرکب از دو کلمه تشکیل شده عبد مضاف به الله است خب پس این شد مرکب اضافی اومزجین یا مرکب مزجی است مانند نیوکاسل مانند چی نیوکاسل در شهر علمه ولی از دو کلمه تشکیل شده یا اسنادی یا مرکب, مرکب اسناد ببینید مرکب اسنادی در اصی یه جمله بوده آه. ولی بعدا همین جمله رو آوردن تبدیل به چی کردن جنبشت. تبدیل به یک اسم علمی حالا چی اسم شهری باشه چی اسم انسانی باشه چی اسم کوه خاصی باشه مهم اینه که تبدیل به یک اسم علمش کردن ما مثلا مثلا میزنم اگر یک روز یا فرزن زید خورد یه جمله هست در اصر زید خورد اگر همین اومدن تبدیل به یک اسم علمی کردن این اسم علم مرکبه اسنادی, اسنادی. مثال مثال پنجم همین هست بن المعتسم و بنا کرد معتسم شهر سرمنرآ شهری وجود داره در دنیا به نام سرمنرآ خوشحال, خوشحال شد هر کسی که اون رو دید ولی این الان اسم یک شهره سرمنرآ ببینید سر من تبديل تبدیل به اسم اکتشاف. وارد کن دیگری تایمرش که این دستور نو متعسی مسیل بنو کات من پس رآ, سر من را اسم شهری بندگان خدا ولی آیه سرمن را در اصل یک جمله اسنادی هست بندگان خدا الان تبدیل به چی شده؟ اسم یک, شهر. اسم یک شهری شده چقدر جالب پس علم یا مفرد هست مثال زدیم یا مراکب اضافی هست مثال شهارده عبدالقاهر یا مزید از نیوکاسل یا اسنادی هست مانند سرمن را او مختوما به کلمه ویه یا این مراکب خاتمه شده با کلمه ویه معنید مثال چارم اول ما صنفه ففر نحوی کتاب سیب ویه کلمه سیب ویه. کلمه چی؟ پس این چند تا شدن؟ پنج تا شدند چند تا شدن؟ پنج تا شدن. مفرد مرکب اضافی از از مرکب مزجی مرکب اسنادی کلمه که با وه پایان شده مانند سیب ویه. حالا بیاید اینجا که براتون توضیح بدم. میگه والاول اولی یعنی مفرد اولی یعنی چه مفرد. مانند اولی مفرد مفرد میگه بر حسب عامل اعراب داده میشه مانند جا زیدن رء تو زیدن مررتو بزیدن آقا اگر مرفوع بود بر حسب عامل باله پس اولی یعنی مفرد بر حسب عامل هست و صدر ثانی و صدر دووی یعنی مرکب اضافی ها بر حسب عامل هست جاء عبدالله رئی تو عبدالله مررت تو بی عبدالله ببینید صدر دووی یعنی صدر مراکب اضافی اجوزش نه صدرش بله ای بر حسب عامل بله اضافی بر حسب عامل اضافی از مرکبات دیگه بابا 5 تا هستن هر بر هر 5 تا در توزیع میده عجل نکنید اولی بر حسب عامل اعراب میگیره یعنی مفرد صدر دومی یعنی صدر مرکب اضافی هم اعرابش بر حسب عامله بقید. که مثالشو زدم یعربان علی حسب العامل بر حسب عامله اعراب میشن و ثالث سومی یمن من صرف اعراب غیر منصرف داره یعنی نیو منظور که در حالت رفع زمه میگیره ولی در حالت جر و نسب غیر منصرف یعنی چی؟ یعنی اگر مجرور هم شد بهش فتح میدیم اگر منصور هم شد بهش میدیم غیر منصرف دیگه مانند نیو که اینجا مبتدا هست مرفوع از با ذمه در حالت رفع ذمه میگیره ولی اگر منسوبش کنیم مرئیت نیوکاسله به بالنیوکاسله اعراب غیر منصرفو میگیره دیگه و ثالثو، یعنی سه‌ومی سومی کدوم هست اما مزجی بله اعراب غیر منصرفو داره سومی اعراب چی رو داره غیر منصرف و دارئ والرابع والرابع يبقى على صورته كما كان قبل الالاميه ببینید اینجا البته یک اشتباهی آورده در کتاب اینو برای انده بدونید رابع نه دیگه خامس چون مثال 4 و پنجم و جاگوزین نوشته در واقع اشتباهی یعنی که اشتباه چاپی است والرابع الان داره مالة توجيه مدى مراكب اصنادي رو توضيح مدى والرابع يعني منظور مراكب اصنادي در كتاب اول متاسفانه سيبو هيرو آورده يعني مختوم به... هيرو بعدا مراكب اصنادي رو آورده كي اينو اصلاح کنید خودتون والرابع يبقى على صورته كما كان قبل الالميتي چارمي يعني مراكب اصنادي سر حالتش باقی ممونه همون حالتی که قبل از علم بودن داشتی مثلا سرره من را هر کلمه اعرابی رو که چطوری در حالت عادی داره لو جمله حساب کنی در حالت علم بودن همین حالت سرش باقی میمونه اینجا مثال 4 رو میذاره اینجا پنجمش کرده بله بله اینجا به سوال جا به جا آورده والخامسو پنجمی یعنی سیبوی هی یبن علالکسر مبنی بر کسره هست پس اون علمی که مختوم به کلمتی ویهی هست اون کلمهی که مختوم به چه به ویهی هست یو بنا على الکسر مبری بر است، هست؟ مبری حل شد یا نه؟ در هر کسره بله مبری بر است. هست مثلا اگر گفتیم جا سیب ویهی بگیم سیب ویهی فائل محلن مرفو چرا چون مبری بر کسره رعی تو سیبوهی مفعول بهی محلل منصوب چون مبنی بر هست مرر تو بی سیبوهی میگی محلن مجروب چون چه هست؟ مبنی برکسره مبنی هست, هست. خب این پس درسی بسیار زیبا بود الان دیگه حل شد معما شو حل شود؟ آسان شود شما اینجوری نگفتی بریم جلوتر بریم جلوتر بعدا بریم جلوتر سد و هفتاد نو این سد رو که توضیح دادم خوب یکون العلم اسمن علم یا اسم هست مانند کان امرون امرون اسم هست و هو وضع اولا اسم اونی رو میکن که در ابتدا وزد و دلالت بر اسم میکنه دلالت بر شخص میکنه مانند محمد و علی و لقبان یا لقب هست مانند چی؟ اوم ال اومین مانند کان عمرون الجاحزو لقبش هست و هو ما اشعره بمدحن او ضم لقب اونیه که روی شخص میگذره یا دلالت بر مدحش میکنه یا دلالت بر چی تو زبانه خود رو وجود داره یک لقبی به شخص دادند حالا اون لقب یا لقب درستیه یا لقب چیه معنی زشتی میده به خاطر زنبش گذاشتن پس مانند کلمه الجاحظ و کنیتان یا این علم کنیه هست و هو ما به ابن بابن او امن او ابن کونی اون از که در قبلش یا ابو ما یا ام یا ابن معنی ده همین مثال ابو اثمان پس هر هم اسم در همین یک مثال آورده هم لقب و هم کونی رو و یجیبو حالا در یک نقطی رو میگه ان یتأخر اللقب عن الاسم واجب است که لقب بعد از اسم بیاد واجب است که لقب بعد از سی بیاد کانت آیشتو ام المؤمنین آیشه اسف هست ام المؤمنین لقب هست؟ لقبش هست کنیش ایش هست کونیه اونی هست که با شروع می شد؟ با عب و ام ایب. ایب ایب بله این بود از درس امروز شما که قسمتی از احکامات علم رو توضیح دادیم تا انجا کار کافی است